ما هم شد و خیلی شما مطلع شاید حالا برای آینده اما یک رو گرفت. ها؟ ای یک یک خیلی پوچیک. <تصفح> خب ماه گرفتگی هم بگم چون مصیبتی هست هر رو از ما می شاید این پیام ما بررسی از ما هم نپرسن می اول بگی ماه گرفتگی چی هست؟ چرا ماه گرفته میشه؟ حالا به اولی که ماه رو وام ماه گرفته، بیدیایی که آمده رویش حالا پرداخ نکرده اونجا باید به طبیع میشه. حالا ماه گرفتگی گی علمی داره قبل از اون. که نبی مکرم اسلام فرمودند که ان الشمس القمر آیتان من آیات الله اینها نشانی های خداوند متعالند بعد فرمودند که لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته اینها برای مرگی کسی گرفته نمیشن برای به دنیا آمدن کسی گرفته نمیشن چرا جوری فرمودن در مدینه منوره هم ما خورشید گرفتگی شد روزی خورشید گرفتگی شد که پسر نازنین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم ابراهیم علیه السلام وفات کردند وقتی ابراهیم فوت کردن خورشید گرفتگی شد چون اون عربها ها معتقد بودند که این خورشید گرفتگی بخاطر از دست دادن شخصیت های بزرگ اینجوری میشه مصیبتها اینجوری میشه این اعتقاد اونها بود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم فورا بالای منبر رفتن و اعلا فرمودن که این خورشید و ما نشانی الله رب العالمین هستند اینا به زندگی کسی ندارم بنابر بر م کسی هم گرفته نمیشه اینها پس این اعتقاد باطل رو از بین ببرید نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم اولین کاری که اینجا انجام داد تصحیح اون عقیده بود تصحیح کرد عقیده را که اعتقاد ها رو نداشته باشید این رفیق روی ویسا زندگی مردم نداره حالا چون که بحث تستیح اقاید بود پس ما هم اقیده بکنیم اینجا مردم معتقدن که این ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی امروزه که میشه اگر کسی حامله باشه باید اون که خانم حامله دست روش کم نزنه اگر اون لحظه دست روی سر بچه افتاد سر بچه دیگه از بین میره یا لکدار میشه اگر دست روی پایش مصیبتی رو رو میاد. خانوی هامل ها دیگه مصیبتا، ها مصیبتا ها می آیند. دست رو شکم نباید بزنه عقب هم خارش داشت علاوه دست نظر اونجا این ضد حالی هست داره به خانوام می اینا اینها خرافاتن. اینا دروغن، دروغ و این اینکه این به این صورت چیزی پیش نمیاد. همیشه دروغ و محزن، خرافاتن. اونها که شکم ها رو دست دادن، حالا بچه حالا ناقص می این بچه ناقص نمیشه. پس این عقیده اول عقیده باطل و دروغ محضی هست این اعتقاده ها رو از بین ببریده بعد این است که در خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی درکت نماز نفر دارید ما در خورشید گرفتگی این درکت با جماعت خونده میشن چون در روز هستن و وقت روز هم دیگه آدم ها جمع میشن میسون جمع علال میشن حالا بریم علی میشه که نماز بخونی اما در ماه گرفتگی جماعت نیست انفرادی درکز نماز نفلا واجب هم نیستن کسی خون نخوند، کسی هم نخوند گناهکار نمیشه در نزد ما نیست نیستنها نفلا اونجا جماعت هم نیست چرا؟ چون گاه ساعتی کشه میشه دوشه الکر بیدار می که برای نماز خونده پس بنابراین و این نماز همون زمان خونده میشه که این علامت وجود داره و به طرف خدا رجوع میکنیم چرا؟ اگر الله رب العالم این نظام را متوقف بکنه اینها هم بر عالم میآیند نظام دنیا مختل میشه انابت الاله هست حالا هم دنیا میگن علم دیگه نگاه نکنید که برای چشمها ضرر دارن برای چشم ها و مشغول نماز بالا نگاه کردن اونو هم نمی نمیبینی و طولانی نماز بخونی تا که از بی این حالتش این یک مسئله ایش اما مسئله بعدی این است که در خود خورشید گرفتگی و ماه, گرفت چرا ماه گرفتگی میشه. حالا ماه در آسمان هست. این نوری که ما روی ماه میبینین این به خاطر این نور خورشید بر ماه هست. حالا همین زمین ما هم اونجا روشنه. این زمین حالا شما داخل اقلام خاموش تاریک میشه، اما در از فضا اگر بینی زمین هم مثل ما مثل ستارگان روشنن اون هم اجرام سماوی مثل اینها تاریک است سیاهن یا رنگهای مختلفین. اونا پوش لام نظر لام روشن باشن این نوری که اونجا هست این انعکاس نور خورشید بر خود ما هست حالا میبینید ماه خیلی روشنه حالا میبینی که کامل خورشید رو گرفته اما در این مدارهایی که حرکت میکنن گاهی گاهی بین ما و خورشید زمین وسط قرار میگیره زمین وسط قرار علط صورت مختلف گاهی کامل وسط قرار میگیره کُلن پوشش میده وقتی کامل پوشش داد و نور روی باسلام ماه نمیوفته و ماه گرفتگی میشه میبینید که در تاریک میشه و این تاریکیش رو میبینی و گاهی گاهی این چو که مدارها کامل مصاوی نیستن گاهی گوشهشو گوشش میده همون گوشه تاریک میشه نور روی اون انکاس پیدا نمیکنه به در زمین و خورشید گرفتگی همین است در این خورشید گرفتگی ماه واسط قرار میگیره بین ماه و خورشید ما اصرا خورش ماه دروی خورش و ما دیگه نوری که به ما میتابه ما حائلشه میبینی الله خورشید گرفتگی شد و نور ما نمیتابه دی. این بخاطب نظام حرکتی هر یکی از اونها در مداره ها زمین در مداری هست و در حرکت میکنن. پس بنابراین این علتش اینها اینها در اصل نشانی اللہ رب العالمین اند که اینجا اینها رو می